گلم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. سوالی که قرنهاست هم ایمانداران و هم غیر ایمانداران میپرسن اینه که چرا خدا اجازه میده انسانها رنج بکشن؟ در درس امروز دانشکده کوچک کتاب مقدس معلممون بررسی خودش رو از رساله اول پترز شروع میکنه. کتابی که نوشته شده تا ایمانداران یهودی رو که تحت ستم بیپایانی بودن تسلی بده. پتروس دو دلیل ذکر میکنه که چرا خدا اجازه میده اونها رنج بکشن و معلم ما در درس امروز اونها رو تحت عنوان با اصابهای تولد دوباره برای شما بازگو میکنه. پیتروس نامه اولش رو اینطور شروع میکنه. از طرف پیتروس رسول ایسای مسیح به قوم برگزیده خدا که در سرتاسر سر استانهای پنتوس و غلاطیه و کاپادوکیه و آسیا و بتانی پراکنده شدند. خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید فیض آرامش برای شما روز روزافسون باد سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیل رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است تا روزی تمام برکات معود را به دست آوریم این برکات در عالم بالا در جایی که خراب و زایه نمی شود و از آب و رنگ نمیافتد برای شما نگه داشته می و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد خدا با قدرت خود شما را به وسیل ایمانتان حفظ خواهد نمود از همین جمله نخست اول پتروس پیداست که پتروس این نامه را خطاب به یهودیان مسیحی پراکنده در آسیای صغیر نوشته درست مثل یعقوب و نویسنده ابرانیان پتروس هم خطاب به یهودیانی می نویسه که پیرو مسیح هستند. یادتون هست که پولس رسول معموریت یافت که رسول غیر یهودیان باشه پتروس هاش رو خطاب به ایمانداران یهودی می نویسه پتروس داشت که یهودیان ایماندار به مسیح را شبانی کنه. بنابراین ماموریت پتروس در وهله اول ایمانداران یهودی بودند. ملاحظه کنید که در رسالات عمومی یعقوب، ابرانیان و پتروس در جمله‌های اول شما کلماتی از نصیحت به کسانی که در رنج هستند می‌بینید. کسانی که این نامه‌های عمومی خطاب به اونها نوشته شده در جفا هستند. نظریه‌ای هست مبنی بر این که هدف اصلی این رسالات عمومی تسلی دادن به مردم تحت جفا است. پتروس از روم مینویسه از جایی که پیروان مسیح در اونجا تحت آزار قرار دارند. پتروس میدونه که جفاها بدتر و بدتر خواهد شد و به استانهای دیگر که مخاطبین نامه‌هایش در آنجا زندگی می‌کنند نیز خواهد رسید. کلیسای نسل اول با جفاهای زیادی مواجه بوده. در واقع تا 300 سال از تاریخ تأسیس کلیسا پیروی ایسای مسیح غیرقانونی قانونی بوده این توضیح خوبی هست که چرا پتروس، یعقوب و نویسنده ابرانیان این همه کلمات تسلی بخش و مشورتی برای کسانی که در جفا بودن نوشتند. رو راست بگم من معتقدم الهیات کامیابی چیزی که امروزه به این نام معروف شده کاملا غیر کتاب مقدسی هست امکان نداره که رسالات عمومی رو بخونید و اونها رو با الهیات کامیابی مطابقت بدید که میگه اگر خدا واقعا شما را برکت بده، اگر شما در اراده خدا باشید، اون موقع نه تنها از رنج جفاها آزاد خواهید شد، بلکه ثروتمند و سالم خواهید بود، چون خدا میخواد که همه فرزندانش در کامیابی باشند. این به هیچ عنوان با رسالات عمومی یا با تاریخ کلیسا یا این واقعیت که بسیاری از پیروان مسیح به خاطر ایمانشان محکوم به مرگ شده اند سازگاری نداره. از دو هزار سال پیش تا پایان جنگ دوم جهانی اگر جزئیات و حوادث رو جنبندی کنید میبینید که در دنیای امروزی ما بیش از هر زمان دیگری مسیحیان تحت آزار بودند. نظریهی هست مبنی بر اینکه کل پیغام پتروس اینه به بالا چشم بدوز. این چیزی که پتروس به این مردم تحت ستم میگه چون میدونه که رنج بیشتری تحمل خواهند کرد. چهارده بار او به رنج اونها اشاره میکنه پتروس سعی می کنه اونها رو در رنج هاشون تشویق کنه و تسلی بده وقتی پتروس به رنج های اونها اشاره میکنه الهیات کامیابی رو تعلیم نمیده او به اونها و به ما دیدگاه های ای از این میده که چرا خدا اجازه میده قومش رنج بکشن. وقتی ما کتاب ایوب رو بررسی کردیم، من سی دلیل کتاب مقدسی ذکر کردم که چرا خدا اجازه میده قومش رنج بکشن من این متن را از اول پتروس جز دلایل کتاب مقدسی برای رنج کشیدن قوم خدا ذکر کردم. پتروس در آیات 6 تا 7 باب یک اول پتروس می نویسه این امر باید شما را خوشحال کند. اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. چنان که فانی در آتش آزمایش می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور میکند ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود در این متن کوتاه پتروس به ما دو دلیل میده که چرا خدا اجازه میده قوم او مانند این قومی که پتروس خطاب به اونها مینیویسه رنج بکشن اولیش اینه شاید لازم باشد. وقتی دیدید گاهی از رنجهای خودتون پیدا می‌کنید به این سه کلمه فکر کنید شاید لازم باشد. بعضی از رنجها فقط زمانی وارد زندگی شما میشن که خدا میدونه شما به اون نیاز دارید همونطور که در کتاب ایوب دیدیم رنجها مستقیما از جانب خدا نمیان اما هر رنجی که وارد زندگی شما میشه به نحوی با اجازه خدا وارد میشه شیطان برای اذیت کردن ایوب باید از خدا اجازه می گرفت. این همون چیزیه که منظور عیسی در یوحنا باب ده هست. اونجا که گفت من در گوسفندان هستم. هر چیزی که بخواد به طرف گوسفندان بره، باید از چوپان بورکنه. کنه. این کار چوپانها بود که وقتی گله شب رو در صحرا سپری می کرد باید حساری برای اونها از بوته‌ها و درختان شکسته تهیه میکردند و دری برای اون قرار میدادند و چوپان در مقابل اون در دراز میکشید و میگفت من در هستم او چنان در مقابل ورودی قرار می گرفت که هیچ گوسفندی نمیتوانست از روی او بپره و هیچ مهاجمی نمیتوانست بدون عبور از او به گوسفندان دسترسی پیدا کنه این تمثیل زیبا به ما میگه که هیچ مشکلی نمیتونه وارد زندگی شما بشه مگر اینکه قبلا از شبان شما عبور کرده باشه این تمثیلی هست که پتروس در برابر ما قرار میده شما در زندگیتون آزمایشات دارید چون که خدا به زندگی شما نگاه میکنه و میگه شاید لازم باشه و بعد به اون آزمایش اجازه میده دیدگاه دیگری در مورد رنج کشیدن اینه پتروس میگه رنج کشیدن موقتی هست بعضی از انواع رنج ها دائمی نیستن یک نفر میگفت آیه مورد علاقه او این هست آمده تا بگذرد به قول پتروس این دیدگاه خوبی از رنج هست توضیح اصلی پتروس برای دلیل رنج ها این هست که او ایمان ارزشمند شما را به تشبیه میکنه طلا فلز ارزشمندی هست و با عبور از آتش خالص میشه. وقتی خدا به زندگی شما نگاه میکنه چیزهایی که در زندگی شما واقعا برای اون مهم هستن، ایمان شما و رشد روحانی شما هست. شما شاید خیلی به مسئله رشد روحانی معتقد نباشید اما خدا شدیدا به اون علاقمنده. همونطور که طلا با عبور از آتش خالص شده و با ارزش میشه خدا اجازه میده چیزهایی وارد زندگی شما بشه تا ایمان شما را خالص کنه و شما رو به لحاظ روحانی رشد بده. خدا علاقمند خالص کردن ایمان ارزشمند شماست. این توضیحی هست که پتروس وقتی به رنجهای خانندگان اشاره میکنه در باب یک نامه اولش میده. وقتی پتروس به موضوع نجات اونها میپردازه به دو چیز اشاره میکنه که هم عیسی و هم پولس رسول به اون اشاره کردند. پتروس به تولد دوباره اشاره میکنه وقتی با به اول نامه اول او رو می خونید، اون رو فراموش نکنید. مسئله تولد دوباره مسئله ای نیست که خیلی در کتاب مقدس به اون اشاره شده باشه. پتروس هم اینطور به انتخاب شدن اشاره میکنه من به مسئله انتخاب معتقد هستم ولی غالبا این موضوعی هست که سوالات زیادی رو به وجود میاره که شاید برای همشون جوابی نباشه. یکی از استادان من می گفت اونقدر مار به وجود بیارید که بتونید اونها رو بکشید. یکی دیگه از شبانان من می گفت مسئله انتخاب شدن یا قوم برگزیده یک سر خانوادگی هست که برای گوش غیر ایمانداران نامعنوسه. من نمیدونم چطور کسی میتونه کتاب مقدس رو بخونه و به قوم برگزیده معتقد نباشه. برگزیده شدن مانند تولد تازه موضوعی نیست که در کتاب مقدس زیاد به اون اشاره شده باشه. اگر شما به مسئله برگزیده شدن معتقد باشید نمیتونید به با آیات زیادی به عنوان دلیل اشاره کنید. من تعریف دیگری برای کلمه برگزیده نمیدونم و حتی اگر فقط یک بار هم در کتاب مقدس به اون اشاره شده باشه من به اون معتقد هستم. به مسئله برگزیده بودن خیلی اشاره نشده اما در این جمله آغازین پتروس به اون اشاره شده نظریه ای هست که بر اساس اون سراسر عهد قدیم دلیل بزرگی بر برگزیده بودن قوم خدا هست وقتی که پتروس به مسئله نجات میرسه اینطور طور میگه در خصوص این نجات پیامبران نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق درباره آن نمودند و وقتی روح مسیح که در آنها بود درباره زحماتی که مسیح میبایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد پیشگویی کرد آنها سعی میکردند بدانند که زمان وقوع آن کی خواهد بود و چگونه خواهد بود. اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که ماموریت آنان به خاطر خودشان نبود بلکه برای شما بوده است کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقایق را به شما گفتند حقایقی که حتی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند آیا این متن شگفت نیست نبوت نجات که در روز پنتیکاس موعظه شد 1500 سال قبل از اینکه این رسولان بیاند و اون را موعظه کنند موعظه شده بود و الان هم 2000 سال است که موعظه میشه وقتی که این انبیا نجات رو پیش بینی کردند اونها نمیدونستند که چه چیزی رو نبوت میکنند جالبه که وقتی اونها می نوشتن حتا وقتی که با قوت مکاشفه ی روح القدس مینوشتند نمیدونستند که در مورد چه چیزی مینویسند. پتروس میگه در دوره شما این نجات که انبیا در کلام خدا نوشتهاند تکمیل شده. این مثالی از اظهاری هست که عیسی در باب چهار روم انجیل یوحنا کرده. یکی میکارد و دیگری درو میکند. عیسی به رسولان میگفت من شما را میفرستم تا از جایی که نکاشته درو کنید. دیگران کار کردند و شما محصول را درو کردید. در پادشاهی خدا چیزی به نام تکنواز وجود نداره. اگر بکارید و درو نکنید کس دیگه ای محصول چیزی رو که شما کاشته اید درو خواهد کرد و اگر درو میکنید یادتون باشه که شما محصولی رو درو میکنید که دیگران کاشدن. من گاهی فکر میکنم ما از دیدگاه تاریخی از درک این ناتوان هستیم که از کسانی که مردن تا ما بتوانیم برکات امروزی رو داشته باشیم قدردانی بکنیم. به عنوان مثال فقط به این فکر کنید که چه کسانی زندگی خودشون رو دادند تا کتاب مقدس رو گردآوری و حفظ کنند و ما چقدر به خاطر کتاب مقدسی که امروزه داریم مدیون اونها هستیم. وقتی ما به دیدگاه تاریخی مسئله نجات میپردازیم، پتروس به ما یادآوری میکنه که ما به خیلی از افراد مدیون هستیم. اگر امروز زمان برداشت محصول هست یادتون باشه بسیاری از مردم رنج کشیدن و بذل و پاشیدن که من و شما امروز میتونیم حاصل اون رو درو کنیم. من شما رو تشویق میکنم که اون آیات رو در باب چهار انجیل یوحنا بخونید. اونجا که عیسی به ما میگه ما حاصل زحمات دیگران رو برداشت میکنیم و اونها کاشتن تا ما بتونیم درو کنیم و بعد از خدا تشکر کنید که شما رو در این دوره از تاریخ به دنیا آورده که زمان برداشت و زمان برکات روحانی غیر منتظره هست. در انتهای باب یک اولین نامش پتروس متن بزرگی از انجیل به ما میده. پتروس اینطور میگه فراموش نکنید که شما از قید روش های بیهوده زندگی که از پدران خدا مخته بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود. بلکه با خون گرانبههایی مانند خون بره بی آیب یعنی با خون مسیح آزاد شدید. اون دست شما که در بررسی عهد قدیم با ما همراه بودید، خواهید فهمید که این کلمات به کتابهایی مثل لاویان، تسنیه و کتاب روت برمی‌گرده. در اون کتاب ها بود که ما با مفهوم بازخرید آشنا شدیم. در لاویان 19 شما قانون خرید و فروش و بازخرید رو دارید. اگر مردی یهودی مجبور میشد کسب و کار خودش رو به یک غیر یهودی بفروشه، اون یهودی میتونست به یکی از خیشاوندانش مراجعه کنه و به او بگه من مجبور شدم کسب و کارم را به همسایه غیر یهودیم بفروشم تو بیا و اون رو برای من بازخرید کن اگر توانستم اون رو به تو باز می‌گردونم اون فامیل متعهد بود که باز خرید کننده یا ولی او باشه و کسب و کار او رو براش بازخرید کنه بعد در کتاب تسنیه شما قانون محلی بازخرید رو می‌بینید اگر زنی مثل رود که یک غیر بود با مرد یهودی ازدواج می‌کرد و اون مرد بدون اینکه صاحب فرزندی بشن میمرد اون زن میتونه به یکی از برادران اون مرد بره به خوشتیبترین ترین اونها و به شایسته ترین اونها از هر نظر اونی که به لحاظ مالی بهترین وضعیت رو داشت بره و بگه من میخوام تو ولی من باشی بازخرید کننده من من زمانی به خاطر ازدواج با برادر تو این امتیاز رو داشتم که عضوی از خانواده خدا باشم حالا او مرده و من به وضع سابق برگشتم من میخوام که دوباره منو برای خانواده خدا بخری با پرداختن بدهی من، با برگرداندن من به خانواده الهی و با ازدواج من، منو بازخرید کن. اگر اون مرد این کار رو انجام میداد، به او ولی یا بازخرید کننده میگفتن. پس مفهوم بازخرید کردن اولاً مسئله شرعی بوده و بعد مسئله قانونی در قوانین محلی. وقتی که به کتاب عهد جدید میرسید، رسولانی مثل پطرس به ما میگند که وقتی ایسا بر صلیب مرد ما رو بازخرید کرد عیسی ولی ما شد او بازخرید کننده ما شد عیسی ما رو بازخرید کرد و ما رو به خدا برگردوند عیسی با مرگش بر صلیب ما رو برگردوند و میتونه با قیامش با برقراری رابطه با ما ما رو برگردونه همونطور که بواز با روت رابطه برقرار کرد این مفهوم بازخریدی هست که پتروس در باب یک برای ما نشون داده. من این سوالات رو در جلسه قبل مطرح کردم. پتروس کی تبدیل شد و تبدیل چیه؟ در باب یک پتروس متن جالبی به ما میده که میتونیم به اون مراحل تولد تازه بگیم. این مراحل چگونه پیش میاد؟ اکثر مردم تولد تازه رو اینطور درک میکنند. وقتی شما تولد جسمانی پیدا میکنید تا قبل از اینکه به دنیا بیایید هیچ شناختی از مراحل تولد ندارید. و هیچ نقشی در تولد جسمانی ندارید و لازم هم نیست که از مراحل تولد جسمانی آگاه باشید تا بتونید به دنیا بیایید همین حقیقت در مورد تولد روحانی هم صدق میکنه وقتی شما از نوع متولد میشید لازم نیست که قبل از تولد از مراحل اون آگاهی داشته باشید تولد تازه برای شما اتفاق میفته و بعد وقتی به گذشته نگاه میکنید میفهمید که چه اتفاقی برای شما افتاده این چیزیه که پتروس اینجا انجام میده به شرطی که پتروس در مورد تجربه تولد دوباره برای خانندگانش میده گوش کنید او میگه اکنون چون از حقیقت تاعت میکنید جانهای خود را پاک و منازه ساخته اید میتوانید یک دیگر را سمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید پس یک دیگر را از جان و دل دوست بدارید این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود بلکه به وسیله تخم غیرفانی، یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافتید زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف هست علف خشک می شود و گلش می ریزد. اما کلام خدا تا ابد باقی است و این کلام همان پیامی هست که به شما داده شده است بنابراین شما باید همه نوع بغض و کینه و فریب و ریاکاری و حسادت و بدگویی را از خود دور سازید مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. زیرا شما در تجربه خود مهر و محبت خدا را دیده اید. این دیدگاه زیبایی از مراحل تولد تازه هست. بازتابی از نگاه به گذشته در مورد تجربه تولد تازه کسانی که پتروس برای اونها می نویسه. به گفته پتروس این نحوه تولد دوباره شما هست شما کلام خدا رو میشنوید این خبر خوش نجات که توسط انبیان نبوت شده که حتی فرشتگان آرزو دارند که به اون نگاه کنند این خبر خوش معزه شده و وقتی معزه شده اون کلام خدا برای شما بوده وقتی کلام خدا برای شما معزه شده اون کلام مانند تخم فنا بوده در زبان یونانی کلمه ای که پتروس برای بذر انتخاب کرده کلمه اسپرم هست. در تولد جسمانی شما اسپرم و اوول دارید. وقتی که اسپرم اوول رو بارور میکنه حاملگی پیش میاد. این نحوه شکلگیری تولد جسمانی هست. حیات هنوز به وجود نیومده اما بارور شده. نه ماه بعد از اون حیات به دنیا خواهد آمد. در رساله اول پتروس در باب یک، پتروس تولد جسمانی رو با تولد روحانی مقایسه میکنه پتروس به ما میگه که از بسیاری جهات تولد روحانی ما مانند تولد جسمانی هست. پتروس به ما میگه که وقتی ما دوباره متولد میشیم مانند اون تولد جسمانی ما هست. اما در مورد تولد روحانی اسپرم یک بزر فناناپذیر هست. پتروس به ما میگه وقتی ما دوباره متولد میشیم اسپرم فناناپذیر کلام خدا هست و ایمان ما مانند اول عمل میکنه. وقتی ما به کلام خدا با ایمان واکنش نشون میدیم اون کلام مانند اسپرم فناناپذیری هست که ایمان ما رو بارور میکنه وقتی ما به کلام خدا باور میکنیم حاملگی روحانی در ما به وجود میاد به گفته پتروس وقتی ما به کلام خدا باور میکنیم جانهای ما پاک میشه بعد پتروس به ما میگه چیزهای خاصی برای ما اتفاق میفته کتاب مرحله بحران تولد برسیم. وقتی ما این سری وقایع رو تجربه می کنیم، از نو متولد میشیم. نتیجه تولد تازه ما این بوده که ما ثمرات روح رو تجربه کردیم که در محبت خالص ما به برادران به اوج خودش میرسه. پتروس به کل تجربه تولد تازه نگاه میکنه و اون تجربه رو در این کلمات خلاصه میکنه. از نو متولد شدن. نصیحت پتروس به کسانی که از نو متولد اند این هست. اكنون چون از حقیقت اطاعت می‌کنید جانهای خود را پاک و منزه ساخته ای می توانید را سمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید پتروس بعد این نوزادان روحانی را اینطور تشویق میکنه. کنه مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده نجات یابید تولد تازه چطور واقع میشه؟ عیسی به ما هشدار میده که تولد تازه مانند وزش باد هست بنابرای گفته ای ایسا شما نمیتونید بگید که اون از کجا میاد و به کجا میره. او میگه باد هر جا که بخواهد میوزد. صدای آن را میشنوی، اما نمیدانی از کجا میاید یا به کجا میرود حالت کسی هم که از روح خدا متولد میشود همین طور است. وقتی ایسا این سخنان را در یهننا سه میگفت منظورش این بود که هیچ الگوی قطعی برای تولد تازه وجود نداره. با این حال من فکر میکنم پتروس به ما رهنمودهایی برای مراحل تولد تازه میده. به گفته پتروس، چیزی مانند حاملگی روحانی هست و بعد دوران بارداری روحانی و بعد بحران تولد. بعد از تولد، حالا که شما نوزادی تازه متولد شده هستید، نصیحت پتروس این هست. مانند نوزادان، مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. این یکی از جذابترین چیزها در مورد تولد هست لازم نیست که به یک نوزاد بگید نوک سینه مادر چی هست و یا کجا هست نوزاد دنبال اون می گرده و با اشتیاق اون رو پیدا میکنه و از اون تغذیه میکنه پتروس به شما میگه که شما هم باید به همین نحو مشتاق کلام خدا باشید نقش مهم کلام خدا رو از ابتدا تا آخرین مرحله تولد دوباره ملاحظه کنید باز هم مایلم این سؤال مهم رو بپرسم آیا شما تبدیل شدی؟ آیا تولد دوباره رو تجربه کردی؟ شاید لازم باشه سؤالم رو اینطور بپرسم آیا از نو متولد شدی؟ کتاب مقدس از مرگ روحانی افراد صحبت میکنه پولس رسول به ما میگه وقتی مردم در گناه زندگی میکنند هرچند زندگی میکنند اما مردن به گفته پولوس رسول در افسوسیان دو این امکان هست که در گناه و خطایای خود بمیرید این امکان هست که علائم حیاتی جسمانی داشته باشید اما به لحاظ روحانی مرده باشید همینطور در پرتو باب یک پتروس این امکان هست که قبل از اینکه تولد تازه را تجربه کنید حیات روحانی داشته باشید کتاب مقدس در دوم قرنتیان میگه کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی می او دیگر آن انسان قبلی نیست او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است. تا سالها وقتی من اون توصیف تولد تازه رو شنیدم با خودم می گفتم آیا این برای من اتفاق افتاده؟ چیزهای قدیمی تمام نشده همه چیز تازه نشده، من اون نوع تغییر خلقت رو در زندگیم تجربه نکردم. شاید ما قبل از اینکه تولد تازه پیدا کنیم باید بفهمیم که هنوز تولد تازه نیافتیم. این اقرار میتونه، اولین گام در مسیر تولد تازه باشه. پتروس به ما دیدگاه های روحانی میده که چطور تولد تازه پیدا کنیم. وقتی که او به ما میگه این امکان هست که ما با شنیدن، باور کردن و واکنش نشان دادن به کلام خدا با اطاعت جانهای خودمون رو پاک کنیم. پتروس اولین باری رو که شما کلام خدا رو میشنوید و به اون واکنش شایسته نشون میدید با حاملگی روحانی برابر میدونه. بعد به گفته پتروس وقتی شما در کلام خدا میمونید، کلام خدا شما را از مرحله بارداری روحانی عبور میده. اون دوره بارداری ممکنه نه ماه طول نکشه. اون میتونه نه ثانیه باشه و یا میتونه نه سال طول بکشه. من به این تفاوت بسیار معتقد هستم. بسیاری از مردم به نظر میرسن که در همون اوائل ایمانشون همه چیز رو تجربه میکنن. بعضی ایمان میارن و مدت قبل از اینکه تولد تازه پیدا کنن مسیح رو پیروی می بعد از تولد تازه، مسئله مهم رشد و تکامل روحانی هست. من فکر می کنم پتروس دیدگاه جالبی از تولد روحانی در آخرین آیات باب یک اول پتروس به ما میده وقتی که اول پتروس رو ادامه می‌دیم به متن زیبایی در باب دو می رسیم که در اونجا پتروس قوم خدا در عهد قدیم رو به قوم خدا در عهد جدید ربط میده. او میگه و اما شما نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیدید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید. در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید اما اکنون قوم خود خدا هستید، زمانی شما از رحمتهای الهی کاملاً بیخبر بودید، اما اکنون رحمت او از آن شماست. ای عزیزان، از شما که در این دنیا قریب و بیگانه هستید، تقاضا می‌کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید. آیا تا حالا با خودتون فکر کردید که رابطه یک کلیسای عهد جدید با قوم خدا در عهد قدیم چی هست؟ اینجا متنی هست که من فکر می کنم این دو رو به هم متصل می در عهد قدیم خدا به وضوح می خواست که پادشاهی داشته باشه. خدا می خواست که در مناطق خاصی شاه باشه و می خواست که اون پادشاهی با قوم اسرائیل مربوط باشه. اما قوم اسرائیل نقشه خدا رو نخواستند. قوم اسرائیل نزد سمویل آمدند و به او گفتند نمی خدا شاه اونها باشه. اونها پادشاهان زمینی می اونها نخواستند خدا شاه اونها باشه و شاه اونها اونها رو به بدبختی کشند. بنی اسرائیل توسط آشوری ها و بابلی ها مغلوب شدند. کسانی که کشته نشده بودند در قول و زنجیر به اسارت رفتند. وقتی که کتابهای پادشاهی رو میخونید ترس و وحشتی رو که بر سر اونها اومد میخونید که در نتیجه حکمرانی پادشاهانی بود که میخواستند. بعد از همه اون بدبختی ها اصارتها و بعد از دوره 400 ست ساله سکوت ایسا و یهیای تعمید دهنده ظاهر شدند و مجده پادشاهی خدا را موعظه کردند. مثل این بود که می خدا باز هم می پادشاه شما بشه فقط عیسی توضیح داد که وقتی من از پادشاهی خدا صحبت می کنم به اینجا و اونجا نگاه نکنید پادشاهی خدا امروز قومی نیست پادشاهی خدا امروز و جغرافیایی نداره. پادشاهی خدا امروز در درون شماست پادشاهی خدا در درون هر مرد و زنی که تسلیم خدا شده و او رو پادشاه خودش قرار داده و تبدیل به رعیت وفادار او شده پتروس برای یهودیانی که پیرو مسیح بودند و در سراسر آسیای صغیر پراکنده شده بودند مینویسه و به اونها میگه شما برگزیدگان خدا هستید اونها قومی مقدس بودند اما آیا قومی مقدس زیر یک پرچم بودند آیا همه در یک کشور بودند درون مرزهای یک کشور نه بعد از اسارت بابل دیگه اینطوری نبود و هرگز همینطور نخواهد شد تا روزی که دوباره عیسی برگرده. اما در امریکای جنوبی امریکای شمالی پاکستان هندوستان فیلیپین ژاپن آلمان ویتنام کامبوج و در سراسر دنیا شما قومی را دارید که عیسی مسیح را به عنوان خداوند و پادشاهشون پذیرفتند. اون افراد به طور فردی و جمعی پادشاهی خدا هستند. وقتی پتروس از قوم مقدس صحبت میکنه، اشاره به تمامی اون مردم در سراسر دنیا میکنه. ما در بررسی دوم پتروس باب خواهیم دید. همونطور که در نامه های پولس و دیگر رسولان دیدیم که روزی خداوند این قوم مقدس را از این دنیا خارج خواهد کرد. در عهد جدید قوم مقدس کلیسا خوانده شده در عهد قدیم این مردم فقط قوم خدا خوانده می شدن. خدا همیشه قوم خودش رو داشته و قوم مقدس خودش رو امروز هم در سراسر دنیا داره وقتی پتروس برای این مردم می نویسه که قوم مقدس هستند به اونها میگه شما کاهنان پادشاهمان عیسی هستی این عقیده جالبی هست. کاهن چیه کاهن کسی که به حضور خدا میره و برای دیگران شفاعت میکنه نبی از طرف خدا میاد و کلامی از خدا برای مردم داره اما کاهن به خاطر مردم به حضور خدا میره تمامی این کسانی که در آسیای سغیر پراکنده شده بودند کاهنین بودند. اونها به مناطق مختلف دنیا فرستاده شده بودند تا برای عیسی مسیح شاگردانی بسازن و به جای اون شاگردان نزد خدا شفاعت کنند به گفته پتروست همه اون مردم کاهنین بودن کتاب مقدس به اونها پادشاهی کاهنین میگه یا کاهنین سلطنتی این تعلیم مهمی هست که پتروس با ما در میون میذاره پتروس همینطور میگه شما قوم برگزیده هستید و در این دنیا مانند بیگانگان غریب هستید این جهان خانه من نیست من فقط از اون عبور میکنم گنجینه های من جایی فراتر از این آسمان آبی قرار گرفته. فرشتگان از آبشارهای طلایی آسمان منو صدا می کنند من نمیتونم این دنیا رو خانه خودم بدونم اینها کلمات سرودی روحانی هستند که به نحوی متفاوت از پطرس قوم خدا رو شرح میده به علاوه قومی مقدس بودن کاهنان پادشاهی بودن قوم برگزیده بودن قوم خدا در این دنیا بیگانه و غریب نیست هستند آیا دوباره متولد شدید؟ آیا عضوی از قوم مقدس خدا هستید؟ آیا عضوی از قوم برگزیده هستید؟ من ایمان دارم که هستید. عزیزان ما در حقیقت در این دنیا غریب هستیم و برای دنیا نخوش همونطور که امروز معلممون گفت قبل از تبدیلمون ما در این دنیا مرده بودیم و حالا فقط نسبت به دنیا مرده ایم. امیدواریم که از درس امروز برکت گرفته باشید و حقیقتاً تبدیل شده باشید. اگر تبدیل نشدید دعای ما اینه که امروز روز تولد دوباره شما باشه. امیدواریم در درس بعدی با ما همراه باشید که مشاوره های عالی در زمینه ازدواج از رسالات پتروز خواهد بود. تا برنامه بعدی دوباره امیدواریم در آرامش و محبت و حفاظت خداوندمون ایسای مسیح بمونید.